این داستان مردی در پوست خرس یکی بود یکی نبود زیر گنبد آبی آسمون جوونی بود که سری پرشور و دلی نترس داشت به سربازی رفت راهی جبهه جنگ شد و توی سخت ترین شرایط نبرد همیشه پیشتاز و جلودار بود تا زمانی که جنگ ادامه داشت همچنان شجاعانه آنه می جنگید ولی وقتی جنگ به پایان رسید اونو اخراج کردند. و فرماندهش بهش خبر داد که باید چه زودتر ارتش رو ترک کنه چون پدر و مادرش مرده بودن و خونه ای نداشت بناچار فکر کرد که نزد برادراش بره و مدتی اونجا بمونه تا جنگ بعدی شروع بشه ولی برادراش که ادمای سنگدلی بودن بهش گفتن از دست تو که کاری برنمیاد با ما زندگی کنی که چی بشه بهتره بری و فکری به حال خودت بکنی سرباز که غیر از تفنگش هیچ چی نداشت تفنگ رو به دوشش انداخت و رفت ببینه که توی این دنیای پهناور چطوری میتونه روزی خودش رو به دست بیاره بعد از مدتی به جنگلزاری رسید و دید چند تا درخت حلقه بار دور هم رویدن. با دلی پر از غم و اندوه زیر درختان نشست و به سرنوشت خودش فکر کرد. با خودش گفت پولی در بسات ندارم. کاری هم که غیر از جنگیدن بلد نیستم. وقتی سهل برقرار باشه دیگه کسی به من احتیاج نداره. بر این چیزی جز فقر و گرسنگی نصیبم نمیشه در این لحظه صدای خشخشی به کوشش رسید دوروبرش رو نگاه کرد و چشمش به مردی عجیب و غریب افتاد مردی غبای سبز رنگ پوشیده بود و حیبتی شاهانه داشت ولی پاهای خیلی زشتی داشت مرد اومد جلو و به سرباز گفت من خوب میدونم تو چی میخوای. هر قذرم که ول خرج باشی بازم پول کافی در اختیارت میذارم ولی فقط باید بدونم پولم رو به کسی میدم که از روی ترس و بزدلی اونو حیف و میل نمیکنه سرباز در جواب گفت سرباز و بزدلی اصلا این دوتا با هم جور در میاد میتونی امتحانم کنی سرباز سرش رو برگردوند و یه خرس بزرگ دید که جلوش ظاهر شده خرس خورناس کشون داشت به طرفش حمله میکرد سرباز فریاد زد آهای دوست کوچولوی من حالا حسابت رو میرسم بعد تفنگش رو در آورد و سر خرس رو نشونه گرفت با اولین شلیک خرس نقش بر زمین شد و دیگه تکون نخورد مرد غریبه به سرباز گفت از این امتحان سربلند بیرون اومدی. حالا فهمیدم که تو از شجاعت هیچی کم نداری. سرپاس که فهمیده بود با چه کسی طرفه گفت حاضرم هر قولی بدم به شرط اینکه به من آسیبی نرسه. مرد بهش گفت خودت باید بفهمی شرطهایی رو که میپذیری برات درد سر درست میکنه یا نه و بعد ادامه داد شرطها از این قراره؟ تو باید هفت سال تموم خودتو نشوری موهات رو شونه نکنی ناخونهاد رو نچینی ریشت رو هم کوتاه نکنی تازه دا و نیایش هم باید کنار بذاری این قباب و ردایی هم که بهت میدم باید همیشه تنت باشه اگر در طول این هفت سال فوت کردی جسدت مال منه و اگر جان سالم به در بردی اون وقت بقیه عمرت رو ثروتمند و بینیاز زندگی میکنی؟ سرباز مدتی نشست و به فکر فرو رفت. به فقر و ناداری خودش فکر کرد و به یاد آورد که چطور بارها بدون اینکه که ترسی به خودش را داده باشه با مرگ روبرو شده بود. و بالاخره تصمیم گرفت شرط و شروط اون مرد غریبه رو بپذیره. غریبه که جادوگری پیر و بدجنس بود، قبای سبت رنگش رو در آورد و به سرباز داد و گفت اگه این قبا رو به تن داشته باشی هر وقت دستت رو توی جیب بکنی پول فراوانی به دست میاری بعد خرس مرده رو پوس کند و اون پوس رو به جای ردا و بستر به سرباز داد و گفت در تمام این هفت سال حق نداری در بستر ای بخوابی یا ردای ای بپوشی از این به بعد اسمت هم پوست خرس میشه. مرد غریبه این حرف رو گفت و ناپدید شد. سرباز بدون درنگ قبار رو پوشید و دستش رو توی جیب کرد و متوجه شد که قضیه پول راسته. پوست خرس رو به شونه انداخت و با خوش اقبالی که بهش روی آورده بود به استقبال دنیا رفت. تا از اون بهره بگیره و با پولهاش هرچی دلش میخواست بخره همام نکردن و موهای ژولیده و ریش انبوه در سال اول چندان آزاردهنده نبود ولی در دومین سال اونو به یه حیولا تبدیل کرده بود تمام صورتش رو مو پوشونده بود ریشش شبیه یک پارچه زبر شده بود انگوشتاش دیگه انگشت نبود دستش مثل چنگال حیوانات شده بود و صورتش آنچنان کسیف شده بود که اگر روش تخم سبزی میکشتند بدون تردید سبز میشد کسایی که برای اولین بار اونو میدیدن ازش فرار میکردند ولی هر جا که میرفت به فقرا پول میداد و اونا هم دعاش میکردند که تا هفت سال دیگه طاقت بیاره با وجود سر و کثیف و ناجورش چون برای اقامتش پول زیادی میپرداخ برای موندن همه جا بهش جا میدادن خلاصه بدون جا و مکان نمیموند روزی از روزهای سال چهارم بود که وارد یه مسافرخونه شد صاحب مسافرخونه حاضر نبود حتی تو توی طویله هم بهش جا بده چون فکر میکرد که همچین حیولایی باعث میشه که از رم کنن <تصفيق> پوست خرس دست به جیب برد و مشتی طلا بیرون آورد. صاحب مسافرخونه تلاها رو که دید چشماش برق زد. دلش نرم شد و توی اتاق تک افتاده و دور از اتاقای دیگه بهش جا داد. اما ازش خواست که قول بده دوروبرش آفتابی نشه تا مسافرخونهش بدنام نشه. شب وقتی پوست خرس، در اتاقش تنها نشسته بود و فکر میکرد که کی میشه این هفت سال تموم بشه، نایهان از اتاق مجاور صدای حقق حق گریهی به گوشش رسید. سرباز که قلب رعوفی داشت ناراحت شد. رفت در اتاق رو باز کرد و دید پیرمردی دستهاش رو روی سرش به هم قلاب کرده و به تلخی داره گریه میکنه. پوست خرس به طرفش رفت ولی پیرمرد که از دیدنش وحشت کرده بود پا به فرار گذاشت اما وقتی صدای مهربون اون رو شنید ایستاد لحن دوستانه سرباز اعتماد پیرمرد رو جلب کرد و اون وا داشت که براش درد و دل کنه و شرح حالش رو بهش بده پیرمرد برای سرباز تعریف کرد که داراییش به تدریج از بین رفته و دختراش دارن توی گرسنگی به سر میبرن و گفت که حتی اونقدر پول نداره که به مالک مسافرخونه بده و به همین خاطر باید به زندان بره پوستخرز گفت اگه مشکلت با پول حل میشه من میتونم کمکت کنم چون پول زیادی دارم اون وقت دنبال مالک مسافرخونه فرستاد و اجاره ملک رو که پیرمرد مهمانخانه دار بهش بدهکار بود رو پرداخت. بعد هم یک مشت طلا از جیبش در آورد و به پیرمرد داد. پیرمرد وقتی دید که در یک چشم به هم زدن تمام ناراحتیا و دلنگرانی‌هاش برطرف شده، نمیدونست دیگه با چه زبونی از سرباز تشکر کنه. بالاخره یاد دختراش افتاد و به پوست خرس گفت بیا به خونه ما بریم تا تو رو به سه دخترم معرفی کنم اونها در زیبایی نظیر ندارن اگرم دلت خواست میتونی یکیشون رو به همسری انتخاب کنی اگه دخترام بفهمن که چه خوبیایی در حق من کردی بدون شک راضی میشن باهات ازدواج بکنن بد حیبتی ولی مهم نیست دل پاکی داری پوست خرس با خوشنودی دعوت پیرمرد مرد و پذیرفت و شادمان راهی خونه اون مرد شدند. دختر بزرگتر همین که چشمش بهش افتاد از وحشت جیغ کشد و فرار کرد دختر دومی دو نگاهی به سرت و پای اون انداخت و گفت چطور میتونم مردی با این حیبت رو به شوهری انتخاب کنم کوچکترین شباهتی به آدمیزاد نداره اون دفعه که یه خرس قهوهی با کلاه سوارکاری و دستکش سفید اومده بود اینجا و خودش رو آدمیزاد معرفی کرده بود به خاطر ظاهر مرتبش نظرم رو بیشتر جلب کرد تا این. دختر کوچکتر با نرمخوی گفت پدر عزیزم این مرد با دست و دلبازی بهت کمک کرده پس باید آدم خوبی باشه. اگر بهش وعده دادی که یکی از دخترات رو بهش بدی، باید به قولت وفا کنی. حیف که موهای کثیف صورت پوس خرص رو پوشونده بود و قیافه اون که با شنیدن این کلمات شاد شده بود دیده نمیشد اون از جیب خودش یک حلقه طلایی در آورد و اونو به دو نیم کرد. نیمیش رو به دختر داد و نیم دیگش رو خودش برداشت. وقتی اون نیمی رو که اسم دختر روشحک شده بود بهش داد، گفت من مجبورم تا سه سال دیگه همچنان به سفرم ادامه بدم ولی سه سال که تموم شد برمیگردم. اگر نیومدم یعنی مردم ولی خواهش میکنم کنم دعا کن خدا منو تا اون موقع زنده نگه داره بعد خدافزی کرد و رفت بعد از رفتن اون، دختر سیاه پوشید و به همسر آیندهش فکر میکرد و اشک میریخت. دو خواهر دیگه سر به سرش میذاشتن و همسرش رو مسخره میکردن. مثلا یه بار بزرگتر بهش گفت وقتی که میخواد دست تو رو تو دستش بگیره باید خیلی احتیاط کنی چون به جای دست چنگال داره. دختر وسطی هم گفت خیر از چیزای شیرین خوشش میاد یهو نیاد بخورتت. دختر اولی دنباله صحبتش رو گرفت و گفت آره اگه کاری بکنی که خوشش بیاد برات زوزه میکشه و بعد ادامه داد به هر حال یه جشن و سرور حسابی براتون را مندازیم چون رقصیدن خرسا معرکه است. دختر جوون در برابر این تن زدن ها و زخم زبان های خونسردی خودش رو حفظ میکرد پوست خرس همچنان به سفر خودش ادامه داد از جایی به جای دیگه میرفت و از هر فرصتی برای کمک به تنگ دستان استفاده میکرد. در نتیجه عده زیادی دعاش میکردن که عمرش طولانی بشه. بالاخره آخرین روز سال هفتم فرا رسید. پوست خرز به جنگلزاری رفت که در اون تعدادی درخت دور یک نقطه، دایره بار رویده بودن و زیر یکی از درختان نشست. چندان طولی نکشید که بادی تند وزیدن گرفت. سپس همون دیو هفت سال پیش ظاهر شد و با چهره عبوس و نگاهی خشن براندازش کرد. دیف کوت سبز سرباز رو به طرفش پرت کرد و ازش خواست که قبای سبز و ردای پوست خرس رو بهش برگردونه. سرباز گفت: انقدر عجله نکن، باید وسایل شستشوی منو فراهم بکنی. دیو خلاف میلش مجبور شد بره و آب بیاره و سربازو بشوره، ریشش رو بتراشه، موهاش رو شانه بزنه و ناخوناش رو بچینه. وقتی همه این کارا تموم شد، سرباز شجاع نگاهی به خودش انداخت و دید خیلی جوانتر و خوش سیماتر از قبل شده. همین که دیو بدخواه از اونجا دور شد، سرباز با قلبی سرشار از شادی بلند شد و به شهر رفت تا برای خودش یک لباس بخره. اون برای خودش یک لباس محملی فاخر و کالسکی با شکوه خرید که چهار تا عصب سفید داشت. بعد هم یک راست به منزل همسرش رفت. هیچکس اونو نشناخت. بازرگان فکر کرده بود که یه تازه وارده یا یه نجیب زادهیه که به مهمونی اومده. اونو به اتاق دختراش هدایت کرد. موقع شام هم سرباز مجبور شد بین دختر اولی و دومی بشینه. دو تا دختر که فکر میکردن این مرد جذاب و هرگز ندیدن تا میتونستن با غذاهای خوشمزه ازش پذیرایی کردن. عروس هم با لباسی مشکی و قیافه عبوس روبروی اونا نشسته بود. حتی کلامی بر زبون نمی وقتی بازرگان و سرباز تنها موندن، بازرگان از مهمان پرسید که آیا مایل با یکی از دختراش ازدواج کنه؟ دوتا دختر بزرگتر تا این حرف شنیدن رفتن لباساشون رو عوض کردن و خودشون رو آراستن تا دل تازه وارد رو ببرن لحظاتی بعد وقتی سرباز با دختر سوم تنها موند نصب حلقش رو از جیبش در و توی لیوان انداخت و روی میز گذاشت دختر جوان که چشمش به نیم حلقه توی لیوان افتاد از شدت هیجان قلبش به شدت میتبید روبان دور گردنش رو که نیمه دیگه حلقه در اون گره خورده بود رو باز کرد، دو نیمه حلقه رو روی هم گذاشت و دید درست همون ای که نصف شده بود. سرباز، سرشار از محبت گفت، من همسرت هستم، همون که یه موقعی به نام پوست خرس میشناختیش. با یاری خدا شکل اولیه خودم رو به دست آوردم و از اون قیافه منحوس در اومدم، بعد همسرش رو در آغوش گرفت. در همین لحظه دو تا دختر بزرگتر با لباسهای رنگ و برنگشون وارد اتاق شدند و فهمیدن که اون مرد خوش قیافه همون پوستخرسه که سالها مسخرش میکردن. هر دو خواهرا خیلی خشمگین و آزرده شدند. از شدت ناراحتی یکی از اونا خودش رو به چاه انداخت و غرق شد. یکی دیگه هم رفت بالای درخت و خودش آبیزون آویزون کرد. شب که شد یه نفر در خونه عروست آماد رو زد. وقتی عروس خانم در رو باز کرد مردی رو با قیافه عجیب و غریب و کتی سبز رنگ در آستانه در دیدش. مرد گفت من همسر تو رو از دست دادم ولی در عوض دو نفر دیگه به چنگ آوردم حالا؟ شما حدس بزنین اون دو نفر دیگه چه کسایی بودن؟